سیزده عادت زده تمبلی. روزتان را با میم تفه آغاز کنید. بهانه ای که از میان می رود. فعلا وقتش را ندارم. پایبندی به اصل هشتاد در ظاهر آسان است. اما وقتی یک برنامه روزانه پر از فعالیت های گوناگون داشته باشید، تمرکز بر مهمترین فعالیت ها یعنی میم تفه آن هم در هر روز دشوار می شود. راه حل این است که نباید در جدول برنامه کاریتان به دنبال زمان خالی برای مهمترین فعالیت ها بگردید. تنها کاری که لازم است بکنید این است که هر روز صبح قبل از هر کار دیگری بدان بپردازید. چند سال پیش لیو بابوتا برای اولین بار از مفهوم مهمترین فعالیت ها یعنی میم تفه سخن گفت. ایده او از این قرار است که فعالیت هایی که بیشترین تاثیر را بر زندگی حرفه ای و شخصی شما دارند شناسایی کنید و آنها را صبح اول وقت انجام دهید عادت ضد تنبلی حاصل از این ایده هم بدین شرح است که سه فعالیتی که می حتما تا پایان روز انجام دهید را شناسایی کنید دو تا از این فعالیت ها باید مربوط به یک پروژه در دست اقدام و یکی از آنها باید بخشی از یک هدف بلند مدت شما باشد علاوه بر آن یکی از این فعالیت ها یعنی میم تفه باید عادتی که روزانه انجامش میدهید باشد. مثال من سال گذشته برای خودم مشخص کردم که فعالیت اصلی 80 درصد من همانا نوشتن است. فرقی نمی کند که بر روی چه پروژه‌ای کار می کنم. من مجبورم در هر روز کاریم این فعالیت را انجام دهم. این بدان معنا بود که من می بایست عادت یکی دو ساعت نوشتن در هر روز صبح را در خودم پرورش میدادم. پس از این دو ساعت نوشتن بقیه زمان صبحگاهیم را می بایست به دو فعالیت مین دیگر که برای آن روز بیشترین اهمیت را داشتند اختصاص میدادم. دادم. من با به آوردن تمرکز بلا بر روی مهمترین فعالیت ها در خودم انرژی و انگیزه لازم برای انجام بقیه پروژه هایم در بعد از ظهر هر روز را به وجود می آوردم. اجرای این عادت پرورش عادت میم تفه بسیار آسان است و با دنبال کردن این پنج مرحله میسر می شود. یک هر تان را با مشخص کردن سه تا از مهمترین فعالیت هایتان در روز بعد به پایان برسانید. دو این فهرست را با قرار دادن پرتأثیر ترین فعالیت ها در رأس آن اولویت بندی کنید. سه از خواب بیدار شوید و بلافاصله فاصله دست به کار انجام فعالیت شماره یک شوید تا بالاخره تکمیل شود. چهار کارتان را با پایان دادن به فعالیت شماره دو و شماره سه ادامه دهید. پنج باقی روزتان را با تمرکز بر فعالیت هایی که نسبتاً اهمیت کمتری دارند بگذرانید. توصیه یک من این است که عادت میم تفه صبحگاهی را در خود پرورش دهید. شروع کردن هر روز صبح با تمرکز بر روی مهمترین فعالیت ها سلاح نهایی قلبه بر به تعویق انداختن کار هاست. بدین ترتیب شما به جای اینکه معطل پیدا کردن زمان مناسب برای انجام مهمترین فعالیت‌ها شوید، آنها را هر روز صبح و پیش از پرداختن به سایر فعالیت‌هایی که تأثیر کمتری بر زندگی شما دارند، آغاز می‌کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی بنانهادن یک برنامه روزانه نیرومند صبحگاهی، به کتاب دیگر من، سحرخیزی و کامروایی مراجعه کنید.